این ما لا ولاته هست چارتا کلمه رو امروز میخواهد توضیح دهد المشبهاتی بلیسا اینا رو میگویند شبیه به لیسه این شبیه بلیسا، ما شبیه بلیسا، لیسه لای به شبیه به و لاته شبیه بلیسا. خب لیسه خودش از اخوات کانه بود یعنی اسم رو مرفوع میگردانید و خبر را منصوب اینا را مستقیم نگفتند شبیه به کانه بلکه گفتند شبیه به لس چرا چون دقیق تر است هم در معنا شبیه به هستند و هم در عمل معناشون منفی عملشون هم مثل عمل چه است اسم رو مرفوع میگردانند و خبر را مرفوع ال الأمثلة مرفوع خبر رامنسوبة القصور شاهقتان الأنهار فائضتان أجرش مديقتي بفرويد القصور شاهقتان إن القصور ان القصور شاهقتان. الأنهار فائضة إن الأنهار فائضتان الحصون مليئة الذخائر كثيرة ما الذخائر كثيرة الزمان مصالم لا زمان مصالما الشارع مزدحم لا شارع مزدحما الوقت وقت ندامة لا ت وقت ندامة الساعة ساعة توبة لا ت ساعة توبة بله برای هر یکی از این چارتا تا کلمه دو تا مثال آورده بود چند تا مثال این میگوییم ردیف اول رو که بن همشون مبتدا و خبرند القصور شاهقه الانهار فائزاء الحصون منئه الذخائر کثیره الى آخر همشون چی مبتدا و خبرند اما روبروشون و مقابلشون امسال را جدا دقت بفرمایید دیگه اینا از نواسی خند دیگه مبتدا خبر نیستند ترکیب چنین هست این میگوییم شبیه بلایسا آل اسمش مرفو و زممه شاهقتا خبر ان این نافیه که شبیه بلایسا هست و منصوب با فتحه ما الحصون مليئه ما يشبيه بليسا الحصون اسمش مرفو باظم مع خبرش منصوب با فتحه لا زمان مصالما لا لا يشبيه بليسا زمانون اسمش مرفو باظم مع مصالما خبرش منصوب با فتحه لا ته میگوین شبيه اسمش حذف است چون از قواعد لا تا این هست که یا اسم یا خبرش یکی باید چه شوند میگویم لاتا شبیه بلیسه اسمش هست فس وقت خبرش هست منصوب با فتح ندامتن کم مضافل اله پس این بود ای از ترکیب اینها اما بیاید روی قواعد قائده شستون همه کتاب تعمل این وما ولا ولا تا النافیات این ما لا ولا تا النافیه اینا همشون النافیه هند دیگه جمش میشه نافیات عملی لیسرو انجام بیدند فترفع ال اسم و تنصب الخبره اسم رو معرفومی گردانند و خبره را منسوب ولكنها لا تعملو هذا العمل الا بشروط اما این عمل رو انجام نمیدهند مگر با شرطهای همزه الف فيشترته في عمل اين وما. اين وما ان و ما ان و ما شرطشون این هست که ان آنیتتقدم اسمها على خبرها اسمشان همیشه مقدم بارتاب باشد. بر خبرشون ما نمیتونیم خبر اینا رو قبل از اسمشون بیاریم بر خلاف مبتدا و خبر که اونجا میتونستیم چیکار کنیم بیامریم و الله انتقد نفیوهما بی الله شرط دوم این دوتا یعنی این و ما این هست که بودنشون به وسیله ای الله از بین نرفته باشد مانند این مثال این هی ای الله حیاتون الدنیا اینه یا ما بله. میگه نیست مگر زندگانی دنیا خوب این نفی کرده ولی الله و بده معنیش چه کار کرده بله ما ؟الله، بشر این نیست مگر بشر معنیش این است که این بشر است. این چه هست این بشر است. پس شرط این و ما نافی این هست که به وسیله الله یعنی بعدش اللهی نیومده باشد که معنی اینا رو به هم زده باشد نفیشون. رو بله بفرما اسد این الحکم ایلا لله, لله بله این این دیگه به هم خورده دیگه عمل لیسه رو انجام نمیده چرا چون به وسیله الله نافیش چی شده ناقضه شده با و یشترط عمل لا لا بغیر از اون دو شرطی که قبلا ذکر شدند لا بغیر از اون دو که قبلا ذکر یک شرط دیگه هم داره و یشترط تو عمل لا فوق الشرطین المتقدمین ان يكونا معمولاها نکرتین و در عمل لا شرط هست بغیر از دو شرطی که رد شدند که دو معمول لا نکره باشند دقیقه بفرماید لا زمان زمانون مسالمن هم اسمش نکره هست هم خبرش هم اسمش نکره هست هم چیش؟ بغیر از این که خبر نمیتواند قبل از اسم بیاید بغیر از این که معنیش نقض نشده باشد اسم و خبر هم چه باشند؟ نکره باشند در لا این شرطی هست که اضافه بر اون دو شرط الا دارد جیم و یشترتو فی عملی لاته ان یکون اسمها و خبرها اسم زمان و در عمل لاته شرط هست که اسم و خبرش هم اسمش هم خبرش اسم زمان باشند معنان ده لاته لا ساعت لا ساعتو ساعت توبته ولی ساعتو حسد شده شما اگر در قرآن برید آیه لاته حین مناسین و لا تحین بگردید در اس چونین هست و لا تلحینو حین مناسین اسمش حسف هست ولی زمان هست ولی چه هست؟ پس شرط هست در لاتا که اسم و خبرش اسم زمان باشند و ان یحذف احدها و یکی از اندو چه شده باشد؟ حسف شده باشد پس لا حین مناسین میشه لاته لاتن... لاتن نافیه که از اخوات لیسه هست حين میشه خبرش اسمش حذف شده اسمش چه شده مناسل هم مضاف الیه هست. هست چی که اسم چی خب این خوب. اینه مستریه خب اینه مستریه اینه مستریه داریم اون ولی رو مزاره بیاد تو کجای کاری؟ این که اسم حکم این ما انوای انها و انها داریم ان شرطیه داریم ان مخففه از مسقل داریم که اینا رو انشاءاله یاد میگیری که از چه راهی اینا رو تشخیص بدیم اینا خودشون زابطه دارند خودشون چی دارن؟ در اتفاقا در درس بعدی میاد در دو یکی دو درس بعدی میاد ولی فعلا ما در درس زیاد طلباایی فی خبری ولی اینو قطعش کنم که در سوژه داغونه زحمت کنیم.